بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين أما بعد أبو سحاق البري رحمه الله وأسكنه فسيح جنات ميقويات ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت ينالك نفعه ما دمت حيا حمجنانك زندية أز أن علمك كاسف كانت بأهر ميباري خدت نفع ميباري دياران نفع ميلي دي. تو میدونی که زن اگر ذره از عورت خودش رو بیرون بکنه از دست، از سر، از موی سر، از پاها، میدونی که ملعوم میشه همچنان به زن و بچت میگی ولی اون کسی که نمیدونه جاهله میاد زن رو بچهش رو پندر درس میده میگه خانم حجاب میگه بهش مردی رو میبینی ریش داشته باشه ولی زنش بد حجاب باشه با آرایش بیاد بیرون جلوه مردم چی میگید به خودتون تو دل خودت چی میگید میگید این بی چی به خودتون میگید چه وصفی را در مقابل این مرد تو ذهن خودتون میاد به خوبی ازش تو ذهن خودتون تخیل میکنید؟ خیر چی چی سبب شده که تو ذهن ما این بدی این چینی به بدی وصف بشه این چینی تخیلش بکنیم یا این چینی تو ذهن ما بیاد جهلش اگر میدونست جلو اونها رو میگیره اگر میدونست امرو معلومه این از منکر می کرد چون نمیدونه براش مهم نیست حالا موهای خانومش بیرون باشی یا نباشه براش مهم نیست چون نمیدونه پس علمه که به تو شخصیت میده مقابل اون شرف شخصیت میده شخصیت میده به تو وقار میده کدوم یک از این دو تا زن با وقارن با هیبتا با شخصیت زن بی حجاب یا با حجاب قابل قیاسن والله قابل قیاس نیستن زن با حجاب زمانی که تو مغازه میره اون مغازه رو سرش پای میندازه حالا به جای اون زنه با حجاب یک زنی بره با اون دمپایی بلند با اون موهای برهنه بره وارد مغازه بشه یا وارد خیام بشه همه میخوان ازش لذت ببرن چش بچرونن انگار چراگاهیه برای گوسفندون که بچرن توش چراگاه میشه این زن همه میخوان بچرن ازش و اون زنم حمال وزر و گناه اون مردمانی هست که چشم اونها بهش داره میفته مگر این نیست که زنی عثری بزنه بره بیرون بوی عنت مشام مرد نامحرمی نخوره مگر اینکه زنا پای شخص اون زن نوشته بشه جس اینه مگه اوزار گناهان کسانی که بوی عنت مشامشون میرسه باید اون زن متحمل بشه زنای اون نفس اماره اون مردم باید به دوش بکشه روز قیامت این همه وزرو چگو نمیخواد روز قیامت بیاد بکشه بر دوش این زن غافله به خاطر جهلش اغر ميدونس حقيقه حساب وكتاب اگر ميدونس كرسول الله صلى الله عليه وسلم يفرمئن ان العين تزني وزناها النظر وان الاذن تزني وزناها السمع وان اليد تزني وزناها البطش والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذب اغر ميدونسي كتش زنا ميكونه غوش زنا ميكونه ونفسه تمنى ميكونه اگر ميدونس ان خاطر ان كارو نميگر شلون نميدونه مياد اون اوزاء و گناهان ديگران را به دوش ميکشه و اون زناها در پرونده اعمالش نوشته میشه و روز قیامت در مقابل اون بازخواست میشه ینا لک نفعه ما دمت حیه تو در این دنیا از اون علمی که کسب کردی بهره میبری و یبقى ذکره لک ان ذهبت اگر از دنیا بری بمیری نامت بر سر زبان ها خواهد موند و یبقى ذکره لک ان ذهبت والله در بعض از اسکوها آمده و یبقى ذخره لک ذخیره‌ای اس نهاده‌ای است برای تو اون علم تو شی هست با خودت جمع کردی یا ذکری هست یاد نامی نیکی که اگر بری از این دنیا با خودت حملش میکنی میبری مثل مال دنیا نیست با خودت میبری الله جل جلاله در مورد رسول الله صلی الله علیه وسلم چی میگه در قرآن؟ میگه و رفعنا لك ذکرک ابله نادانی زندیقی خدا نترسی بلند میشه قرآن را میسوزونه یا از رسول الله صلی الله علیه وسلم به بدی یاد میکنه یا به تمسخر کاریکاتوری رو میکشه برای رسول الله صلی الله علیه و سلام برای قران الله جل و علا خونه چقدر مسلمان میجوشد بیش از میلیارد نزدیک به 2 میلیارد مسلمونه این اهانت را نه به قران نه به رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام نمیتونه بپذیره حب رسول الله صلی الله علیه وسلم ما داریم بغیر از ما بیش از 1 میلیارد مسلمان روی زمین حب رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام دوران ما حب رسول الله صلی الله علیه و سلام در بخاری که مالی ثروتی ازش لباسی بهمون به کادو داده، هدیه داده، آبنباتی شکلاتی من خریده، بسلی بس بهمون داده. رسول الله صلی الله علیه و منتی بر سر مادر. منت چی؟ هدایت، ارشاد. امام ما. با دوستش هم داریم. خونم من می میجوشه اگر بخواد کسی براصلح صصری چیزی بگه این شرف این جایگاه در قلب من و تو چگونه رسول الله صلی الله علیه و پیدا کرد و رفعنا لك ذکراک الله یک جایگاهش منزلتش بالا برده و این جایگاهی را در قلب ما ازش به جا گذاشته بخاطر چی علمش نسبت به الله جل و علا و نسبت به دین الله جل و علمه علم. به تو شرف می در میان قومت خانوادت عشیرت و حتی در مقابل خلق بر زمین ويبقى ذكره لك ان ذهبتا فرق ميکنه برای الله جل وعلا کہ محمد مصطفا باشه که تابع وحیشه ی هر کسی پس از محمد مصطفا صلی الله علیه و سلم تابع وحیشه باشه الله نگاه اون بندگی با اون بندگیش میکنه نه پوستش نه رنگش نه شکلش نه قوم و برای الله جل وعلا مهم نیست ان الله لا ينظر الى صوركم و الله جل وعلا مهم نیست که تو چه رنگو چه مال و چه ثروتی و چه نسبی داری برای الله جل و علا هیچ کدوم مهم نیست برای الله جل و علا چی مهمه تقوایت تقوایت مهمه برای الله جل و علا شن اخته تو الله جل و علا خب الان بعد از اینکه اومد توصیه خود این کلی شروع میکنه در این ابیات 6 و 7 و 8 و 9 و 10 میات فواید علم رو میگه الان هر چن که در ضمن لابلایی که توصیه به علم میکنه فوایدشو گفت اشاره کرد از خبال اون علم داشته باشیم چه از اون بهش چه از اون خوشنودی الله چه از اون فرشتگانی که مسخر میشن برای ما و الى آخر از اون فضیلت که یاد شد برای علم بازم از اون فواید علم اینجا برای ما یاد میکنه میگه هو عضب المهند و ليسین تصيب به بهی من اردتا و در بعض از نسخه ها من ضربته»، هو العظب المهند این علم همچون شمشیر بتاره برنده و کوشنده است چطور هو العظب المهند بس في علم رو داره میکنه تشبیهش داره میکنه به یک شمشیری برنده براق کهن قدیمی هو العظب المهند مهند معلومه به شمشیرهایی که تو هند ساخته میشه مهند گفته میشه نوعی از شمشیرهای برنده لیسین بو خطا نمیره طرف بخوره رفته کج نمیشه خم نمیشه تصیب به یعنی با اون شمشیر علم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 الان شما عالم شدید نسبت به سوره بقره میدونید که هر جنی را از پا در میاره و هر جادوگری سوره بقره قدرت توانایی بقره را الان شما بهش اعتقاد دارید آیا فردا شما به نالید اینجا پیش من بگید شیخ من جادو شدم تلسمم کردم زنم همسرم خواهرم برادرم میاد میرنجید اون رنجش خودتون داد خودت پیش من میارید نه چرا چون میدونید اون شيف بتار به دستتون اون شمشیر برنده اون سوره بقره که اگر بخونید تلاوت بکنید هیچ جنی نمیتونه نزیکتون بشه و نزدیکون خونتون هم حتی نمیتونه بشه نه اینکه خودتون رسول الله صلی الله علیه و سلام میفرمایند منزلی که در سوره بقره خونده بشه جن نزیکش نمیشه برنده است و کوشنده است حتی در مقابل اون کسی که تو نمبینی اون دشمنی که تو اون رو نمبینی حالا چه برسه اون دشمنت تو اون رو میبینی چه میخواد گناهکار و تبهکار باشه چی میخواد اون مبتدع ضال و, و گمراه باشه صاحب بدعتت میاد در مسجد حرف میزنه چهار تا دروغ پشت سره هم ردیف میکنه کافیه که تو فقط بگی برادر دوست رفیر، هیچ کدوم از این حادثه که اینجا گفتی به درد بخور نبودن همه دروغ بودن علم داری میدونی که این حدیث دروغ بود جاهل نیستی شمشیرت به هدف میخوره تیرت به هدف میخوره دیگه اون طرف روش نمیشه دوباره بلند بشه اون حدیث را مردم بازگو بکنه بخواد بازگو بکنه تو با اون شمشیر برنده رو داری مردم میفهمن که این داره دروغ میگه تذکر میدی یادواری میدی به خوبی دستش رو میگیری به کناری گوشه ای نشد تو جمعی بهش میگی که یادواری بشه. علم؟ تو علم با کسی شوخی نداری به غمبر اللهجله ال ازش دفاع بکنی. نباد بذاین کسی بر اسات دروغی به بعدده. علم تو غیرات داد. و علم سبب شد که تو اینجا بیایی دفاع بکنی از حریم دین از محمد مصففا ال الله عليه وسدم. علم سبب شد. که جلو این شخص ب؟ این شخص. با اون علمت که شمشیر برنده هست دیگر جرعت پیدا نمی که بیاد در آن محفل و اون مجلس بلند بشه و سخن بگه اگر عالم باشه جاهل دیگه سخن نخواهد گفت چون ما اهل علم نبودیم و نشدیم و دنبالش نبودیم جوحال به خودشون جرأت دادن جلو مردم ایسادن به خورد مردم دروغ دادن اگر ما عالم بودیم اونها جرأت پیدا نمی بس زعف در اون شمشیره که ما به دست داریم شمشیرمون ترخشان و برنده باشه علم را محکم و سفت و سخت بگیریم تا کسی اجازه به خودش نده در مقابل دین الله جل جلاله قضاوتی بکنه یا با اون جهلش حرفی را از دین به میان بیاره من اردت و من ضربت فرقی نمیکنه هر کسی بخواه. هر کسی که بخواد توهینی بکنه بخواد ناسزایی بگه بخواد کافی که تو علم ایده داشته باشی میدونی با اون علم چگونه جلو اون شخص بیستی و اون دعوا را فیصله بدی بین ما و اهل باطل دعوا است حق و باطل اهل حق نباید ساکت بشه نباید پس بکشن اگر ما پس کشیدیم اونا شیر میشن اونا فکر میکنن که حق با اونا است حق باید بازگو بشه گفته بشه تا حق از باطل نمایان بشه خیلی جا هست. ما میگن نگید سب بکنید حوصله به خرج هر چیزی نگید به مردم هی میان ترمز دستانداز له ما میذارن نگید گفته نشه نگید خروج بر هریا حکام درستی حالا این نمونه های از بدعت های فکری دارم میگم نگید این بدعت نگید مثلا بدی فرقه جماعت نگید مردم از دین زده میشن مردم نسبت به دین بدبین میشن بالاخره اونها هم خوبی داره طرف زحمت کشیده با این جماعت هدایت شده به مسجد اومده هزار تا نتم سنت میذارن اینها زحمت کشیده مردم رو به نماز آورده فلا معتاد و فلان کس رو نجات دادن خانوادش ازش مینالیدن الان سرش بلنده نگاه بکنید کار میکنه نگاه بکنید نماز میاد. سر سرصف میسه زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه مشروب میخوردن آیات نازل میشه در این که مشروب حرامه آیا چون اینا همه مدمن خم بودن همه مشروب داشتن و ذخیره داشتن باید الله ساکت میشد و پیغمبر خدا ساکت میشد و صحابه ساکت میشدن نه اینجا دیگه فیصله بشه الله حرام کرده مشروب قبلا بلی حلال بود ولی الان حرامه با کسی شوخی نیست مشروب نوشیدی جزایت چیه؟ شلق با کسی شوخی هست در دین؟ نه عذری هست بگید من مدمن خم بودم فلان بودم فرقی نمیکنه گناه و معصیت باشه یا بدعتم انحراف باشه همونطور که گناه گمراهیه بدعتم گمراهیه تو در مقابل گمراهی مسئولی که مردم را روشن بکنی حالا میخواد طرف نمازخون باشه اهل روزه و جهاد و نميدونم صدقه باشه فرقي نميكنه صحابه اهل نماز بودن جهل نماز نبودن قرار بر اين نيست كه كسي اهل نماز اشتباه از سر نزنه نبات ما امر المعروف و نهي عن المنكر تعتيل و كونيم بخاطر فلان جماعت و فلان فرقه و فلان طائفه والتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف و عن المنكر والتكن يعني هيشه باد ين بس سر شما باشه وگرنه چي شما دیگه تفا بهتی نخواهید داشت با اون یهود و نصاری که نابود شدن هلاک شدن مثل قوم سب لا يتناهون عن منکر فعلو لبئس ما كانوا يفعلون كانوا لا يتناهون عن منکر فعلو گناه مرتکب میشدن منکر را انجام میدادن نهی ازش نمیکردن گناه عدم نهی از گناه گناه انجام میدادن نهی از اون گناه هم نمیکردن لبئس ما كانوا يفعلون خیر فعلش بد بود چه کدام یک از این تدافع بدتر از همه کدام یکیه عدم نهی از منکر گناهشون به جای خودش میدونستن این گناهه چقدر اون فعل بد بود زمانی که نهی از منکر نمیکرد اون دعوتگران وظیفه دعوت خودشون رو به درستی انجام نمیدادن چقدر بده مثل این طایفه از یهود که الله جل و علا اینجوری ازشون به بدی یاد میکنه لا بس ما كانوا يفعلون چه سیاق کلام در چی داره الله یاد میکنه در سياق عدم نهي عن منكر كانوا لا يتناهون عن منكر يفعلوا لا يتناهون ان فعل هذا شلون ياديكونه نهي عن منكر ما يكرن ان عدم نهي عن منكر تشيه لا بئس شقد بدت ما كانوا يفعلوا شقد بده وقتي نهي عن منكر يسان نكونه بده غناه ولى بدرز ان تشيه دعوتغري كدعوت بحق نده نهي منكر ما يكون نقب مردم الشرك ان بدعه ان معصيه ان غناه نزل الله جل وعلا ان فعل بدر از ان فعل قبلي كن احكار فعلش بدر بل بدر از اون زماني كتو نهي از منكر نكني و كنوز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت و كنوز علم گنجه كنزه هیچ دز نمیتونه تحدید بکنه که این گنج رو استوب بتونه بگیره نمیتونه با تحدیدش این گنج رو استوب بگیره علم گنجه نه اینکه یوسف دور بشه نه اینکه تو چاه انداخته بشه و در غریب غربت بشه علم گنجه علم در سینه یوسف علم یوسف علیه و السلام نجات میده متمایز میکنه برتر میکنه نسبت به بقیه برادران علم زمانی که خواب میبینه خواب اون 11 تا ستاره تعبیر میکنه یکی از چیزا که یعقوب علیه سلام مجذگانی میده به یوسف علیه و السلام اینکه الله جلب و علا به تو علم میده الله علم تعبیر خواب علم شریعت و الی اخر سر میشی زمانی که ستارهگان آسمان تاکی گفت به پدره انی رایتو احد عشره کوکم تاکی گفت ایازهت و ستاره در آسمان دیدم نیکی ایازهت و ستاره و شمس و القمر حتی خورشید و ماهش لیسا جدی دیدم که دارم به من سجده میکنه چه برداشتی میکنه این عقب علیه ساته و السلام ماه بلند ستاره بلندتر از ما با اون نور روشناییش یعنی نور تو مقام تو از نور خورشید و نور ماه بیشتر میشه که ستارگان باید سر به سجدت بگذارن یعنی مقام و تو خیلی بالا قاعد شد و با چی مقام و تو بالا قاعد شد با چه نوری که از اون نور خورشید هم برتر بشه با نور شریعت الهی با نور وحی الهی نهای مشدگانی بود برداشتا بود که یعقوب علیه السلام که اون جایگاه بالا بالایی که الله جل وعلا از آن بچگی میدونست که این یوسف این لیاقته رو خواهد داشت و این بشارته رو در اون خواب به یوسف میده بعد یعقوبم میدونه و تعبیر میکنه براش علم اینجوری این منکانه و جایگاهی بهت میده تصورش بکنید میگم یوسف علیه السلام خورشید و ماه که پدرش و همسر پدرشه حالا بعضی گفته ماه همسر پدرشه چون مادرش که فوت میشه از بچگی و پدر که یعقوب علیه ساته واسه گفته شده خورشید و گفته چه ما فرقی نداره پدر و مادره را پدر و پدر یا همسر پدر این دوتا برای تو یوسف ماه خورشید سجده میکنن این پیغمبره ولی مقام یوسف چنان بالا میره چنان قدر و مکانتش و جایگاهش که این یکی خودش را در کنار اون کوچک میشماره سر و سجدش میذاره از باب عظمتش این عزمات تو یوسف از خورشید ما هم بیشتر خواهد شد خیلی حرفه علم به انسان رفعت میده یرفع الله الذين امنوا منکم الله رفعت بده یقین داشته باش این علم گنجه کسی امن نمیتونه استو بده استو بگیره هر چقدر بر علیهت گفتن حرف بزنن تخریبت بکنن تهمت بهت بزنن هر چقدر بدگویی بکنن هر چقدر انگی بهت بزنن هر چقدر بهت انگی بزنن دروغ بر علیهت بگن والله وقتی که نزده الله جلالعلا بری باشی امروز نفهمیدن مردم امروز پی نبردن فردا پی میبرند فردا الله جلالعلا صاحتت و تبرعه خواهد کرد الله خودش از تو دفاع میکنه الله از دفاع میکنه سبحان الله قصه اممونی و عائشه را بیاد بیارید منافقین چه کار کردن؟ تحمد زدن همه در شک و شبه افتاده بودن حتی از صحابه رسول الله صلی اللہ علیه وسلم رسول الله اونجا و سخنی به میان نمیاره اذیت میشه بر سر منبر آخر میسته میگه دلالب نوبه عذیت هم کرده در ارزم، در ناموسم، بر امین عایش رضی الله عنها سخت گذشت تحمد در ایمان و در عفتش سخت بود میگه امین عایش رضی الله عنها خودم و کمتر و کوچکتر از این می دیدم که الله در شأن من آیاتی نازل بکنه ایمان و تقوی چه شرفی به انسان میده که الله جل وعلا آیاتی سخنانی از خودش نازل بکنه بر پیغمبرش در تبراش در عفت و پاکدامنیش علمه حایشه رضی الله عنها کی حامل گنج نبوته حامل وحی رسول الله که برش نازل شده الله ازش دفاع نکنه ام المؤمنینه کوچک و دروشتی از رسول الله صلی الله علیه وسلم نمیبینه از اون چیزی که بلند میشه در کنارشو کجا میره و کجا میاد و چیکار میکنه و نمیکنه کوچک و درشت نمیمیره مگر اینکه برای ما نقل میکنه حامل وحی نبوته الله حمجله از اون آسمان هفتمش ازش دفاع میکنه شرف این شرف اون گنجه همت بخارج آدم نهایشه سخت کوشید تلاش کرد برای اینکه چیزی از قلمش نیفته کوچیک و درشت زندگی رسول الله صلی الله علیه حفظ بکنه تا اینکه نقلش بکنه برای امتی از امت اسلام که در دینشون آگاه باشن الله همشینی حمایت میکنه از بندگانش نترس زمانی که این گنج را گرفتی دو زیبیات اون گنج رو از تو بگیره کسی بیاد تو رو تخریب بکنه نترس از اینکه بهت تهمتی بهت بزنن فکر بکنی تو اونجا خار بشي يا ذليل بشي يا اباي خدشهي بر شخصيتك وارد بشه نترس تو الله را داري يزيدو بكثره الانفاق منه وينقص ان به كفا شددت هر بخششي وما انفقت من شيء هر بخششي مخاد علم مخاد مال مخاد خوي هر بخششي وما انفقت من شيء فهو يخلف ما جر انك الله خلفش بيت بشترا اموالك تو دالي بیشتر از اون زحمتی که کشیدی به بیشتر از اون خوبی که تو کردی خوبی کردی خوبی می‌بینی چی میخواد مالی ببخشی چی میخواهد تو علمی ببخشی از وقت خودت به دین الله بدی بدون اون علمت هر چقدر بیشتر ببخشی الله برات بیشترش میکنه اون علم هر چقدر بیشتر انفاق کردی از اون علمت رفتی این بر این روستا و اون روستا این ده و اون ده با مردم نشستی 4 تا حدیث خوندی زحمت کشیدی برای الله بدون الله جل در مقابل این وقتی که بخشش میکنی بزل میکنی، به اندازه اون وقتی که میگذاری برای مردم، برای این که حدیثی از اون نور الهی، وحی الهی به گوش مردم برسه دل اونها با بصیرت روشن بشه، زحمت کشیدی که چراغ خونه ای مردم، چراغ قلب مردم زنده بشه، روشن بشه. الله جل و اون چراغ قلب تو رو روشن میکنه، دل تو رو روشن میکنه، تو رو خوش میکنه. این هم یکی از راههای خوش یکی از فواید علم. سمره علمه به ای که تو ببخشی از اون نور وحی مردم را بهره من بسازی خودت بهره من دل سینه خودت روشن میشه با اون نور وحی و یا نقص هم داره اگر کوتاهی بکنی و یا نقص چه موقع ان به کفن شدات مال با عدم بخشش کم میشه زیاد نمیشه بخیل شدی خسیس شدی از وقت خودت به مردم ندادی زحمت نکشیدی برای الله دعوت ندادی نگفتی دسته باز داشتی از انفاق کردن اون علم اون چیزی که یاد گرفتی علم تم اندک میشه چقدر بودن حافظ قرآن بودن قرآن رو فراموش کردن چقدر بودن سالیان سال در مدارس دینی درس خوندن الان جاهلان فارق تاثیر دانشگاه ها بودن الان نام و نشانی از خودشون به نگذاشتن چرا چون از وقت خودشون ندادن برای علم علم اگر وقت خودت را بهش ندی علم تو گرفته میشه بر باش اینجا داره گوشزد میکنه گوشت میکنه علم اگر ازش انفاق نکنی از تو گرفته میشه نعمت محروم نشو قطر محروم ناسوس یاد بگیر که یاد فلو قد ذقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت فلو ذقت من حلواه طعما علم شیرینی داره اگر با حس چشایید ذقت بین مزاقق خوش بشه از ان تتعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلام يقول الهي. فلو الله يجعل من المسلمين من حلواه يقول لك ان الله يجعل من المسلمين يقول لك ان الله من المسلمين يقول لك ان الله يجعل ان الله يجعل دنیا را رها می کردی اگر میدونستسی حقیقت تععم مزه علم دنیا را رها می کردی می چسبیدی به علم و تلاش میکردی برای کسبش برای جمعآوریششتهتم. اگر بدونی حقیقت و قدر علم اگر تعمش رو مزش رو بدونی. انسان چون و مزش و قدر علم نمیونه درش کوتاهی میکنه تقصیر داره. اینجا حل ما هست، نسبت به علم، حقیقت علم فواید علم اینجا داره گوشد میکنه میگه قدر علم رو بدون علم. نه تنها اون جایگاهون و, جایگاه و عدهایی که الله داده علم برای خود شیرینی داره علم شیرینه چون شیطان اغواات کرده چون شیطان وسوسه کرده بر تو تلخه بر تو سخته شیطان گولت داده تو نمیتونی قرآن حفظ بکنی الله جل و علا در قرآن میگه اول قد القرآن قرآن آسانه حفظش فهمش درکش الله در بید میگه آسونه شیطان بید میگه چی سخته نمیتونی کار کاسبی زن بچه زندگی طلب عین نمیدونم درس تحصیل وسوسه شیطانی رو کنار بذار چند بار تو باید در روز از دست این شیطان با الله بنام ببری چند بار از این وسوسش کوتاهی نکن 14 بار از بس که این شیطان حریص در اغوای تو در گمراهی تو صبح بلند میشی نماز تموم شد باید سه بار باید سه تا بخونی بعد از هر نماز الا نماز صبح بعد نماز ظهر نماز عصر بعد از هر نماز یک بار گفتن اخسوره اخلاص سوره فلق و ناس سنت پنج بار بعد از پنج بعد نماز هر نماز یک بار از اون وسوسه ای ابلیس و شیاطین با الله بناو ببرید سه بار از کار صبحگاه دارید سه بار از کار شامگاه دارید شش بار شش و پنج 11 سه بارم قبل از خواب دارید چند بار 14 بار نیاز به اجتهاد داره جد داره بخاطر همین میگه اگر بدونی اشتهاد میکنی میکنید لا و التعلم تا این اجتهاد میخواد شیطان در کمین تو نشسته شیطان خریص بر گمراهیید إن قد حريسه تو نياز داري 14 بار به الله پناه ببري كه الله ترا نجات بده شر وسوسه شيطان 15م بيت ولم يشغلك عنه هوا مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت ولا الهاك عنه انيق روض ولا خدر بزينتها كلفته ولا يشغلك عنه هوا شيرينيه علم روكي چشيدي قدر علم روكي دونستي دیگه تابع هوای نفس خودت نخواهی شد تابع هوای نفس خود نمیشی ولی اشغال قرنه و هوا مطاعو دیگه تو رو مشغول نمی کنه یعنی حالا برم موسیقی فلانی فلان ترانه رو گوش بدم یا برم فلان کانال رو بگرم فلان چیز رو نگاه بکنم اصلا فتنه ها زیاده چقدر از مردم هستن از طلاب و دانشجان به ما گلایه میکنن شیخ من عادت کردم به فیلم های فلان مبتزل شیخ من نمیتونم جلو خودم توبه کردم دوباره برگشتم شیخ من مبتلا شدم به سمنا میخوام توبه بکنم ای توبه ما میشکنم چه کار کنم درد رنج نالشه خودش هم میدونه داره اشتباه میکنه خودش هم نابود داره میکنه رو داره به تباهی میده راه نجاتش چیه یک چیز علم اگر شیرینی علم بمزاقش خورده بود اگر قدر علم و عظمتش رو میدونست ولم میشغل کنه هوا و مطاعه بگن هوای نفست در تو تأثیر نمی که تو رو گمراه بکنه بکشنه به اون حرام چون تو مجغولی با دنیا چون وقت خودت رو ندادی به قرآن و فهم قرآن برای علم شرعی وقتت ندادی شیطان اقواهت کرده شیطان فریبت داده دردت مال اینه چون اجتهاد نکردی کوشش نکردی برای علم شرعی شیطان بر قلبت چیره شده با اون گنا هم ها در قلب تو شیر جلبه داده بله تو خوش داری وقت تلف میکنی زن داری بچه داری ولی کنداری فیلم های مبتزل نگاه میکنین چقدر از اون زننا گلایه و داد و بیداد میکنن از شوهرانی که لذت نمیبرن از زندگیشون به خاطر چی به خاطری که شوهر نگاه فیلم های مبتظل میکنه. نه اینکه اون فیلم های آثارش آثار بدش به خود شخص برمیگرده حتی به دوربری هاششان برمیگرده حتی نسبت به ناموس خودش هم میشه. چون عادت کرده سر برهن‌ها رو ببینه براش عادی شده براش اب مهم نیست که زن بچه‌ش هم سر برهنه باشه نه باشه همینی که رسول الله صلی الله علیه و توصیه می‌کنه که اگر زن بد حجابی رو دیدید لعنتش بکنید لعنهون لعنتش بکنید چرا یک از حالا لازم نیست که بگید ای خواهر یا فلانی تو ملعونی نه لا لازم نیست حاجک بز از اولمو راه دادان مثل شیخ الوانی رحمه الله بتور عام کسی جلبت که نگرفت خدا لعنت بکنه زن اون بد حجاب بین خود تو الله جل و طب بغزق براحتون عمل در قلبتو باقی بمونه يا جلو بزنه بچت حدقل بگوك بفهمان تو خش ندنيت اسمع سيته الله نه كه تو بشيني جلوو زن بچت کانال تلویزیون باز بكنين زن سربرنه و لوخ جلوو زن بچت تام بشيني و اون بيغيرتي نگاه نگاه اونها هم بكنين اين چيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يف كل امتي معافه الا ان المجاهرون هر كسي را الله شاد ببخشه معافش بكنه در بدن ايش در حساب و کتابش هر کسی شاید معافش بشه الله جل و الا یک هر کسی شاید الله ببخشه الا یک کس کیه جہر به گناه بکنه این پدری که نشسته این برادری که نشسته جلوی خانوادهش این جہر به گناه نکرده داره نگاه زنان نامحرم میکنه چطور میخواد جلوی الله بیسته چطور میخواد الله جل و اعلی گناهانشو ببخشه اون درهایی که شیطان در کمینگاه ما نشسته کنار اون نزدیک اون درها نشین بر خودمون در رو ببندیم یک در رو فقط باز باز بذاریم اون در چیه در علم شرعی علم شرعی درش بر تو باز شد همت کردی کوشش کردی تلاش کردی برای کسب علم شرعی دیگر وسوسه این در نمیشه این کانال این تلویزیون این برنامه و این فیلمنامه و این نمیدونم داستان و این بهمان و این بیسان هیچ دری هیچ باغبستانی برات زیبا نخواهد بود فقط یک باغبستانی که بر قلب تو وازه اونم بستان علم یه چیزی که فقط بر تو شیرینه برای تو شیرینه اونم چی؟ علم ولم یشغل که انه و هون مطاعن ولی دنیا بزخروفی ها دنیا با کل اون زیبایش برات مهم نیست فتنتا اون دنیا با اون فتنهاش با اون زخرفه و زیباییهاش اگر تو دنبال علم باشی تو را آلوده نمی هیچ چیزی تو را آلوده نمی از اون دنیا با اون زیبایی ها و اون خوشی تو از الله فاصله نمیده مادامی که در علم بر زندگی تو بر دل تو بازه. این در, در خیر و رحمت اللهی بر دل تو باز باشه هیچ دری دیگه بر دل تو دوست نقاهد شد از اون درهای گناه و معصیت از اون درهایی که شیطان در, در کمینت برات نشسته فتن های دنیا زیاده فتنه مال فتنه شهوت هوا و ح فتنه ها زیاده. انسان زمانی غوا میشه فریب میخوره که از علم شرقی فاصله بگیره. پس علم شرعی برش حریص باشیم. این توصیه ابو ازحاق هست. اون عالم ربانی که در اسپانیا، در اندولوس مینالید، از دوربری های خودش، از دوست رفقای خودش که مشغول دنیا شدن و از آخرت غافل شدن و نسبت به علم و دین الهی بیمسئولیت شدن داره میناله داره توصیه میکنه اینچینین نباشید. ولا الهاك عنه انيق روض ولا خضر بزينتها كلفته ولا الهاك عنه هي شي از علم الشرعي نميتونه تو را مشغول بكنه زماني كتو شيريني علم الشرعي را بچشي و دنبالش باشي نه مال و ثروت و نه زخرفه الدنيا و نه هم انيق روض نه هم زيباي بوستانها طرف طول سال پول جمع میکنه تا دو هفته بره گردش تفریح شیراز سوهان شمال ویلا کرایه بکنه دو میلیون سه میلیون چار میلیون هر روزی یا بهش بگه یک میلیون صدقه بده جوش بالا میاد ولی میره شمال یک کرایه یک ویلایی که هیچ یک اتاقی دو میلیون میده برای یک شبش که خوش بگذارانه که خوشبخت باشه خوشبختی اینه نه والله خوشبختی نیست برمیگرده پولام تموم شده حالا چه کار کنم حالا دیگه بعدم توقعات زن و بچهش. شمال که قبول نیست مردو دارن میرن ترکیه فلانی رفته ترکیه حالت گذاشته اونجا داره کیف میکنه کی میریم ترکیه مثلا اینجا دیگه قبول نیست دنیا تموم شدنی نیست هی انسان فکر میکنه تو این در خوشی هست تو اون در خوشی هست میخواد بره الله رفته شیراز اصفهان سیر شده شمال شمال سیر شده ترکیه ترکیه بعد میگه اروپا هی هی بالاتر کی میره حجاب بزنشم ضعیف‌تر میشه. اینجا چی که میره؟ حداقل چادر بر سرش هست. ترکیه که رفت بر برمی داره. اروپا که رسید که دیگه شیطان نگاه بکنید لباس تقوا که رفت لباس تنم میره. لباس تقوا، ذالک خیر. لباس تقوا علم، با علم دست میاد. این لباس تقوا که رفت، جامعه قلبت که برهن شد، تن برهن میشه. این برهنگی که شما میبینید به خاطر همین. چیزی این نیست. صورت ظاهری دلالت بر صورت باطنی داره. وقتی که جامعه قلب پوشش تقوا نداره شما توقع دارید که پوشش ظاهری تقوا باشه لباس باشه نیست نخواهد بود شیطان اقوام میکنه شیطان در ما این خوشی را ایجاد میکنه خوشی به اون آب به اون رود به اون بستان بلکه طالب علم براش مهم نیست برای بخاری مهم نبود که در بخارا چه رودی است برای بخاری ابرهای رحمت الهی مهم بود از سخنان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلام که کجا باریده میشه در کجا مسجد و در کجا محفلی عالمی از سخنان روح الله صلی الله علیه و سلم بر سر زبان میاره اون مجلس بخاری حاضر است ور دنیا و اونور دنیا میره از مدینه گرفته و مکه میره از شام گرفته و مصر میره سختی و کوشش و زحمت و تلاش میکنه برای دین الله جل و علا برای کسب علم اگر نميادی از بخاری به خاطر زحمتش سنگ دین را به سینه زد سنگ حب محمد مصطفی به سینه زد تلاش کرد این چنین رو سفید موند و باقی گذاشت اون رو سفیدیش تا روز قیامت. رحمت را در این دی. بارش باران را در این دی. رحمت الهی را در سخنان وحی الهی دی، نه در اون آبی که بر روی زمین جاری جار است به دریا ریخته میشه. اهل ای طلب علم، فری به اون رود جاری را نخور، ولا خدرم بزینتها کلفتا. نکنه اینجا یک اشاره‌ای میکنن علما میگه طالب علم خب اینجا اشاره میکنه شیخ ابو اسحق البیری طالب علم باغ روض و ریاض و روضه همه دلات بر بستان و گلستان میده طالب علم بستان و گلستانش رو چیزی دیگه میبینه علم شروعی بغتر همین شما از قدیم دارید علماء بزمانی کتاب مینوشتن علمی رو مثلا جمع بری میکردن رو کتابی مثل امام نووی احادیثی رو در عدا و اخلاق جمع میکنه اسمش چی میذاره؟ ر باقي بستان صالحي باقي بستان صالحي صالحين باقي بستان شون جيه احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم زياد داريم از اون كتابهاي كه علما اسمشون رو روض و رياض گذشتهان چيز روض المربع افتي بچاس بستان العارفين و رياض شنو واقعا حقيقتش طالب علم هيچ چيزي را بر علم شرعي برتر نيبيده و خوشي خودش در علم شرعي ميبينه ولا خدرون بزينتها كلفته خذ ذوات الخدور دخترانه اون شخصی که هم مغمش علمه اون دختران زیبا چه از همسران و چه از کنیزان او را مشغول نمی کنه با اون زیورالاتشو ولا خدرون بزینته، کلفته، کلفته، ای شغلته، وله هی تنیه چیزی تو را مشغول نخواهد کرد اگر حقیقت علم شرعی را بچشی و شیرینی اون را به مذاقت خودت بچشی زمانی که بچشی و حقیقتش رو درک بکنی دیگر هیچ چیزی بر تو شیرین نخواهد بود جز اون علم و اون وحی الهی بحمده. سبحان الله بحمدک سبحان بحمد و صل الله علیه و آله محمد